برعالمین و صلی الله علیه سیدنا رسول الله و آله الضیبین من رحمه و خاهرین اللهم رحمتی و رحمتی و رحمتی بحث بود فصل و احل الزکت و بحث که اینجا منطهی شد که آیه مبارک ظاهرن هیچ نحوه ارتباطی به بحث حجیعت خبر عبر یا سره نداره سهی نداره و یه از که این زاهد آیه مبارکه یک آیه شخصا شواهد نشون میده در ایام مدنه بوده و عادتا نواد خطاب یهو آیه دوم هم که در سوره نحل گفته شده در مکه است و گفته شده در مدینه امکان داره هر در سوره از کنم که اون اونی ما با شواهد موجود در براه نگاه میکنیم ذکر مراد کتاب نیست یعنی مثلا تورات و اینجی در آیات مبارکه نایدیم کلمه ذکر اصلاح شده بشه بر تورات و اینجی بر اونها اهل کتاب میگفتن توضیح دادیم که در مکه که حسولا یهودی ها نبودن در مکه تکتوکی از نصارا مثل این گرغت ابن نوپل دایی خدیجه از مسیحی ها وجود داشت اما از یهودی کسی نمید و اون که از مجموعه آیات انسان در میره با آیاتی که کلمه ذکر درش هست زادن مراد از ذکر به اصطلاح ما مکتب وحی مراد باشه خلاصه و ذکر حول ذکرون لکه نه نه نه حالا مخواد مکتب وحی رو به شخص شخصگاهی ذکر شده ولنظر الله از انظر الله لکن ذکرم رسولم این ذکر بودن رسول الله به اعتبار وحیم ایش جامعه بین معانی رو وحیم و ان نحن نذر نذکر و انا هادا لذکرون و ولی قومه به عنوان وحی الهی برای در قرآن هم اطلاقی مجموعه آیات و آیات که انسان نگاه میکنه این ازش میاد مرتب وحی به ازداره و ظاهره برشت کار باری مبارکم هم همین باشه یعنی شتاب به اهل مدینه یا اهل مکه که شما راجع به اوصاف رسول الله و نبوت رسول الله به کسانی که با وحی آشنایی دارن مراجعه کنیم پس اهل الزهر یعنی به کسانی که با حواله وحیانی آشنایی دارند. نه مراد خصوص اهل کتاب باشه کسانی که بشناسن حقیقت به نظر من معنی آیه اینه آده یکم جدید هست معنیش کسانی که با حقایر وحیانی آشنا دارن با مکمل وحی عاشنایی دارن با اونها مراجعه بکنید و ببینید که به اصطلاح این مطلب رو که پیغمبر فرمودن با اون معیارهای وحی که در عمم سابقه بوده میخوریان یا نرد خصوص چون آیه در مشکین اهل خرافان نبودن مشکین فقط ظاهرا هسته ادراهیم ربو داشتن و بعدا آداب شرکامیزی که در شریعت ایشان غارت کرده بودن ظاهر آیه مبارکه اینه البته اون در هر دو آیه‌ای که مادرش داریم سوال راجع به این است که پیغمبر میشه بشر باشه یا با سرشته باشه مثلا و ما اصلا ناقبل که الاله جالان نوح الکین و اهلزه از این نقطه سوال بوده که اونها هم انسان هایی بودن بشر بودن حساب رضایه بشر بودن لکن به اینها وحی دارن ارتباط وحیانی دارن رجالن نومی اون نقطه اینه که انسان لکن لیکن ارتباط با مبدع وحی دارن وقت فس الو احل از فابرنان تفری آمده و به این عنوان که شما مراجعه بکنید، به کسانی که با به وحی آشنا هستن به شما میگه این مطلب درست و از مجموعه روایات و شنر به نویست و موازه استعمال چنین معلوم میشه که مثلا فصل و احل با عنوان یک علته ولو مثلا با عنوان عدات تعبیر علته یعنی کبرای کلی اون فصل و احل الزکر اون کبرای کلی صحرا و تطویقش در بار این که انبیاء صابقین بشر بودن که به اونها برمی شد لیکن این مناقب نداره که در بقیه, بقیه هوایج وحیانی هم در ذک مراجعه بشه. پیدا کردیم. درسته مورد. اونی که در مورد هست. عنوان نوعه این که رجالن نونیه این موردش. اما کبرای کلی شما در هوایج وحیانی به کسانی که با وحی ارتباط دارن مراجعه کنید. یکیش این مورده. لذا، می‌بینیم در مجموعه روایات و شواهد به اطلاق پس و اهل ذکر هم از پس مورد مخصص نیست یکی از مواردی که رجوع به احل بشه و آشنایان به وحی بشه این است که انبیار صادق بشر بودن انسان بودن رجال بودن فقط ارتباط باقی باشن این یه خصوصه بپرسیم اما عموم به جای خودش محفوظه کما این که نیست که مثلا این جور بگیم در ذهنیت متعارف مردم اون زمان مثلا راجع به مسیحیت کشیش مثلا اون درجات بالای کشیش که اصطلاحاً منظور کاردینال یا پاک میگه در اصطلاح عربی در زیر قصه مباهله به عنوان دو تا مقام مهم کشیشی سیر و عاقب عامه من فلوس سیر واقه مرادف با چه اصطلاح کشیشی زمان ماز کاردینال ما مثلا بوده مثلا رسوشون کاردینار بود و بعد هم نمیشتن علا که در نجران بود سید و آخر با عین و قاف و ده پاکه و ایسه شاید که ای اصطلاح خاصی در اونجا بوده الان ما هم مثلا میبین ای کاردینار کشیش این مراسلی که دارن درجاتی که داره. در ذهنیت مردم اون زمان این بود که اینا اهل ذکرن این اونهایی که درجات عالی کشیشی دارن یا مثلا علمای بزرگ یهود که ربی بشون بودن ربیون قاتل معهوم که در قرآن آمده ربی ها رو اهل ذکر می دونسن. اما در اسلام اینطور نشد که هم شخصی از صحابه یا هر آله یا هر فقیه بشه اهل ذکر در اسلام به خاطر اون توصیهی که بر از اول شروع فروندن در روز یومل انزاد و امروشی کرد اغربی ایوکم یوابیون علی هاذ الامر الا یکون وصی و خلیفتی من بعدی چون جامعه تا مساله قدیم و انی تارکون فیکم مستقلاً کتاب الله و عهدتی اهل بیت از مجموعه سیره رسول الله یا آیات و روایاتی که صحبت شده ام خصوصا بر در میاد که در اسلام اهل بیت اونایی که ارتباط با مسئله بحث دارن خصوص اهل بیت علیهم السلام و لزاً در روایات تاکید شده مراد از اهل ذکر ما هستیم این مراد از اهل ذکر پس یک اطلاق داره پس فقط اهل ذکر خصوص اون سوال از رجاله موهی الهی نیست اون مورد هست اما اطلاق داره و تصرفی که رسول الله فرمودن این بود که در اسلام شما ممکن در مسیریت بگیم کاردینال اهل ذکره آشنایی با مسائل بغیه یا در مسیریت رد آشنایی با مسائل وهیه همین تصرفا مثلا اهل سنت کنن از بوقا هاشون یا یا حتی احتمال روابطشون لكن با مجموعه روایات اهل بیت میگن چون مراد از وحیه و مرتبه وهیه و در اسلام کسانی رو که مرتبط با وهیهن رسول الله صلی الله علیه و سلم پس برابری اون روایات هم شد این رادید که های خوبی داشته برای توجیه روایات قابل قبول نیست پس این معما که مراد در دیاره سامولاله این است که این آیه الان در زمان ما اولا اطلاق داره احساس اون رجاله نوحی الیه نیست چرا چون دیگه مسئله جا افتاده جاافتاده تو عالم اسلامی معنا نداره برای این مطلب کردن یا بشر بودن بخوام به کسی مراجعه کنم این اطلاق داره فصل و که کلمه اخلاقی که آیه مبارکه فصل و احلزه استفاده داره این اختصاص به اون حکم واحدی که در صدرهای ایرد افلاح داره این یکی دو این در تیجه تصمبراتی که رسول الله راجع به قرآن فرمودن مراد از اهل زکر در این امت خصوص اهل بیت علیه مسلم این که این همه روایت هم تأکید شده این نقطه اصاسیش اینه که در این امت اهل زکر یعنی کسانی که ارتباط با ملحی دارن مراد از اهل زکر کسانی که ارتباط با اهل دارند این منحصر از درای معین مصطفی (ص) اصلا این که مصطفی نمیشه و این جدی تفسیر نه این جدیه تفسیر نیست. و این مراد این است که در زمان ما کسانی که اهل وحی باشند و اونها رو مرتبط با, منحسر با احل وحی باشه منحصر از اهل رضا (ع) در حال آیه مبارکه انصافا یک رد نداره ناظر به رجوع به احلبای در مسائلی که مربوط است به نهمت و مسائلی که مربوط است به اوای رحیانی سببتی به بحثه بود خبر است و نقل و نقل و اینجوری حرفا واقعه و اینجور حرفا, حرفا نداشت از آیات دیگری که ذکر شده که استادم عرضم آیه نه یا شده که بعد از منافقی میادن پیش چه پیرانگر بعد مصالحمون پیرانگر تفسیر میکردند از اصلا پیرانگر خدا اینجوری گفته خلاف این گفته و الان راستی می‌گوییم به معاذ گفت اصطلاحاً پیغمبر هر چیزی رو قبول میکنه خودش مایه ما علمی نداره مایه ما ثابت نداره من بشی چیز می‌گم یه بعد شما درست می‌گم یه دیگه ولی چیزی می‌گم همینطور خدا می‌گه یه چیز بشه بعد ثابت اینی که پیغمبر به اصطلاح اون روز بوشه خودو خودو اوذر پیغمبر های هم نازل شده که بعد بله در بعد از معارف می‌گیم به شما که این مطلب درسته اما این نه به عنوان این که واقعا احتقاقون داریم اگر خدا من گفت اون بحث ارتباط ما با خدا یک چیز ارتباط ما با شما و منسلمان ها چیز دیگر ایست. از این دو نقه ارتباط آگه مبارکه با یک تربیر خیلی زیبایی این طور تربیر شد یومنو در قسمت ارتباط با خدا کلمه باب کار رو و و للمؤمنین نام به کار رو بشه خیلی زیباست و اینی که آیه گویی فرنده من اموز عبادیشون نمیکنم ایمان اعتیاد اینجا ظاهراه ولی از ایمان اون معنای لوهوی یعنی آرامش و سکون نفس اون سکون نفسی که انسان پیدا میکنه آرامشی که انسان پیدا میکنه میخوام میکن بیانی ارتباط ایشون با خدا یعنی ارتباط مستقیم و ارتباطی است که حب. چون سابنه هم رو ارز کردیم کتب لغت نوشتن که بسریه ها با برای انصابه معنای دیگه باید ذهب نکرد همینجور هم هست درستش هم همین انصابی ارتباط و اتصال یا به قول خودشون انصاب بین اون و بین اون مدخوره با یعنی این ایمان به خدا این رو استقرار داره آرامش داره این ایمان به خدا با و این یک جور ایمانه یک جورتی ایمان رو آرامشی که همبر در جامعه داره یعنی اون آرامش به حسب ظاهر به حسب تمام مردم به چشم یک نواس نگاه میکنه خب ممکنه در همین صحابه یک عبدهی در درجه بالای ایمان باشن یک عبدهی منافق باشن یک عبدهی درجه وسط باشن قیغمبر یومنو للمومنین به همه به نحو این که به نحو اونها باشه مثل اصطلاح محروف مثل خورشید همه سعی سنگی خوشید تکنون خورشید مالبونات ارتباطی با خورشید پیغمبر ارتباطش با مردم از این قدیله یعنی آیه مبارکه ناظر به این قسمته که پیغمبر به حسب ظاهر برای همه مؤمنین بی ایک چشم میکنه شما میگیم اینطور بود اینکه نقطه خاصی نباشیم بگه هایی این به خاطر اون رابطه عمومی است که پیغمبر با جامعه اسلامی و با مؤمنین داره غیر از اون ارتباط اتصال و ارتباطی است که با خدا داره اگر خدا چیزی پر یک حساب داره شما مؤمنین چیزی این حساب دیگری داره الان یه حال آیان کاره که زادش مفادشینه که هیچ رفتی به مسئله حجیت خبر واحد و اینکه این خبر برای پیغمبر خود چه فهه به این حرفا نداره که برای ما باشه به همه مجموعه آیات رو ما اعرض کردیم انصافش هیچ شدوم از این آیات محلق جدیدی که درش شهر باشه وجود ندارم بعد از آیات مرموم استاد متعرض روایات شدن که خب دستبندی کردن روایات رو مظامین مختلف رو دست و کردن و سعی کردن اجمالا جواب بدن و در دوره قبلی هم روی طبائقی گفتیم همه روایات سریعا میخوایم برای اینکه، که الان یعنی کلام محلوه که این کلامان تحلیفه برگرمی در باری روایاتی که در جلد فبر کتاب وسائل هم خوب جلد هیجه چاپ ردین نمیدونه 26 و 27 چاپ جدید میشه 25 چند چاپ جهد میشه در اونجا چون مخاطران مرز وسائل بکنیم بره. خب انصافا هم مرز بزرگواریست بزرگ مرز وسائل و تورخ و کلماتیشا لیکن چون ایفون در دو, دو با برده و بعد از احادیث تحتیل کرده باید اینجا اینطور سطحه اینجا اینطور سطحه اونجا اینطور دیگه تشریف بی این شد که از کتاب جامعال احادیث یک باب خاصی رو به این عنوان قرار داده بعد از جامعال احادیث بکنیم که آن این چند که هستی شد این جامعال احادیث در گربش مراجعه بفن سابقا چند بار از کردیم در وسائ در بحث کنجد خبر سقه رو برده خبر باقید رو برده در مقدمات پس پستا جلده یک یا به تبیر روی در جلد سقه شناسن در جلده یکی جلد مقدماته باق مخنگیومه از مقدمات رو عنوان حجیت اخبار سقاط البته عنوان کتاب وسائل فرم میکنه شون دیگه آنمادی شهر وسائل میبین اللہ اونجا باید توضیحی رسید به با عنوان باقیشان دو باب هم دارن ایکی باب نظره هشته ایکی آزده ایکی نه آزده دو باب دارن ایشون و اون خصوصیات دیالا پهندگی در رسال شهر ندهیم آن دیگه خودشون مراجعه کن از این راجعه بی این بسن نکه دیگری که که دارن از کردن من روم بر معتقد بودن که ما در ادواب آیات رو هم بیاریم مسائل نداره ایشون آیات رو هم ابردن در همین باب اول آیه کتمانه نظرین یک سمون مهانزلنه ها بعد آیه اوزانه که امروز خوندیم بعد آیه نخر بعد آیه بله آیه فصل و احل ذکر از فصل و احل ذکر رو ایشون بازم ناقص آورده اصلا فصل و احل ذکر دوبار بار آمده یکی در نحر آمده یکی هم در سوره مبارکه به اصطلاح انبیان بعدم آیه نبه روشون رو بودم بله. بعدم بعدم آیهاتی آیهاتی اون طرف رو ضعیف رو آیاتی آیهاتی که منکرینه به حجید خبرگاهه عمل کردم و تحجیم هستن هست نشتر استوزه لعیزان اوجیت حجید با آیهاتی هم متعرض نشدیم بعدشون میگیر برای که نه او پی حیز من و که این استبلاد ایشون نوار میگیر که حالا به هر حال باز آیات رو بیارم برای طرف این. چه طرفه یک طرفی که طرف غایل به حجیت طرفی که غایل به حجیت بعد هم متعرض اجمالی روایات شدن بهشون میگه اخبار هم چند طائف هم. اخباری؟ اگر یاد آیون باشه اول بعد یک نعضاری اشاره بین تواقفش و رو، اونها رو گفتیم مثلا اخباری که میگه رو جوب سقاط رو اخباری که پیمه علیه مستمونی از جواب سواد اخباری که اخبار مخارضه هست الى آخرین ایشونه یک دسترندیه اجمالی کرده خود بعد نیست و بعد از او وارد راستیان شده ما دیگه از امروز اینشالاتهالا تا یه چند روزی روایات رو کامل اینشالاتهالا میخواییم حدیث اول در کتاب کافی شریف آمده این حدیث در جلده یک کافی حبابول هجا آمده ایشون در بابل حجه یک شرحانی رو به عنوان همه علیم بدول اطلاعات و عنوان مقام حجه الهیه در بابل اشارت و نص ایکی بین عنوان اشاره و نص به امام صادق جوال امام هادی یکی ایکی همه رو علیم به بقیت الله که رسیده ایشون رو جب الله دو سه عنوان داره تسمیه تصمیه تو من آ که عنوان داره باب و تصمینت من را این عنوان ادهی از و این حدیث اول اون بابه این حدیث که الان جزء جز به حدیث اولیه که ایشون رو از این سابقا در قصد رو کنیم مرموم کلینی مردم کلینی در اینجا یک دو سه هم در راجب باب مرده بچه راجب امام زمان که دو سه باب داره توقیهات حضرتون رو در این با توضیحات ارزش روايته که به احتمال بسیار قوی ما عرض کردیم شروع تا چون عرض بکنیم در کتاب دیگرش خورده شده. ولی اینجا اون چیزی که منظور واقعیت اللهی اینه، یکیش شخصیت میا من را توضیح هم عرض کردیم ارزش روایاتی رو که مردم کلینی در این عنوان داره به این جهته که ایشون در دوران پیوسته شهروا مردم مرحوم کلینی در این تخلث عنوان ایشان حسانیل که در دوران قیبت سورا متشبه به خیدمت شده و بعد از ایشان صدوق هم در کمار الدین همینطور داره اونجا بزن تصمیق منباب و من, من شاهد ابو برا آه عنوانش اینه با عنوان صدوح مالا قیبت کوران هم هست این دوتا با هم فهم رو کنه خیلی هم حجیبه. یعنی مرحوم کلینی در قیبت سورا تارزی که حسانی شده که خدمت ایشون رسیدن. و صدوق اعمه قیبت کبرا هم میگه خود کتابیشم که در قیبت کبرا نوشته شده چون بعدشون با سنن نمیدونه اما به همهاب اعمه اون چون که در کتاب صدوق آمده شامل قیبت کبرا هم هست این حدیث روشون گرمان عربانه حدیث کار خوب بیان کردن چون ای از علمان مخصوصا از این متنشکرین حالا ما آسرین من آسرنا من آسرنا الاره بیین حدیثش و خیلی به اصطلاح بعضی‌ها سعی کردن این مانور بدهن رضا همین حدیث در غلط می‌خویم و صحبتش هست اولا صحبت یعنی که این حدیث از کافی آماده که معروف و دروستون هست اثر صحیح خصوصا و محمد بن عبد از محمد بن عبد الله این پسر همیاری معروفه از مشایخ نیست شنوای محمد بن عبد الله و بسیار مرد بزرگوار و جای وقری است جای بحث نداره و محمد بن یحیی هم که از اجلا و بزرگان عمر یعنی به اصطلاح چون ادعی در باب حجج خبر ثقه اصول و عنوانه قرارداد این حدیث تمسا کرده سعی کرده مثلا جوری شواهد رو اقامه کن که این حدیث مثلا مقتوعه چون اشعار معروفیه در کلمات و قدماوی اصولی است هزار سال قبل در سحرادی از سید مرتضی از دیگران که تمسک به اخبار واحد برای حجیه خبر واحد اینش که مرغودی یه چیز تازه نیست که در کتاب این اشکال معروفی است و سعی کردن مثلا بگن بعضی داریم راه های مختلفی برای جواب رفتن یکیش اینه که مثلا این حدیث واحد فوق العاده صحیحه که ما دیگه تقریبا غلطش پیدا نمی‌کنیم درسته تمسک به خبر واحد بر حجیه خبر واحد نشود حلای حالی محمد بن عبدالله و محمد بن یحیح و از روزرگان از حضرها و ان عبدالله ابن جعفر همیری ایشون هم خوبقل عاده جای و قدره به ذهن من میاد باز کلینی بتونه ازشون حلیظه هم کنه اما بعد رو ازشون نرزه میکنه مرحوم کلینی ایشون از مشاعف قمن عبدالله ابن جعفر همیری از مشاعف قمن خودی ایشون و پسر ایشون چند باره عرض کردم مال همیاری این قورقل اسناد محمد همیاری پدر همه عبدالله جعفر یه توقیعات همیاری به بغیت الله داریم که خیلی معروفه جدا معروف این به حضرت الله اون همیاری مراد سره از این قدرات صحت دو تا همیاری معروفه قورقل اسناد همیاری این مال پدره 이게 توقیعات ولی همیاری اللمان وندی این مال الشریعت که محمد بن الله باشه و خود هم دردار نوچه همفر خوب انصافا هم. مرد خوب قلعاد بزرگوار و جعیقل و, و عزی نوشن در قوم بلکه در دنیای شیعه نجاشی میگه برد مغدا در دویست و نوید و خوردهی ای. خوردهیشو بگر نمی کن نیه خورده و که در کتاب رساله ابو غالب زرادی گفته ورود ایشان به کوفه دویست و که بذارین میگیم قاعدتا واسه کلیه ایشون حدیث نروکنن دیگه شده ها مشکل نداره کلیه ایشون که نداره فعلا حدیث نذاره نمیشه شده خود کلیه نیازی که است پسر ایشان عمد نداره ایشون نه عمد حاله اله مرحوم نجاشی ایشون در سال 1397 کوفه شد این خیلی مهمه من چند عرف دو بار از این قضیه بستم دیگه گفته باشن چون کوفه محل تولید ال در تشیع کوفه است این اساس معرف ما به کوفه بنی گردید و این میراث های کوفه است که به قم آمده یا اول به بغداد آمده اولین بار به بغداد تاثیر نریومه و تغییر کرده بعد هم در سالهای های 200 حدود به قم آمده با اینکه نجاشی نیست وقتی وازه کوفه شد همه امنها ها اهل کوفه نه شیعه این کوفه باز که درش حدیث نویس داشت خیلی عجیبه خیلی جلالت حدیثی که اصلش مال کوفه بوده رسیده بیشان معلوم میشه که خود اهل کوفه میگن که این آقا با اینکه دوره گفتشون شو با من درنگ یعنی واقعا حالا با اینکه چون دوره خود ایشان در معرفت حدیث و تحمل حدیث و تنیه حدیث از خود اهل کوفه که اصل حدیث خیلی این ادوار ده از زمان نشانه دهنده جلالت شانه عبد الله بن جعفر همیریه در کنار همین و اهل ها و اکثر و زیاد هم شده حالا خود همینا که ما نگاه میکنیم مصادرش داره به کوفه این نشون میده که در چه جلالت شانی بوده مرحوم قمری که باز هم خود اهل کوفه از ایشان سم او و اکثر او. یعنی زیاد هم شده اینطور یک مورد کمیتی دو مورد این روایت نجشی خیلی مقامیش و پس این سند از سنده براسته سنده قبیل زنی انصافا اولش که دوستا بزرگوار بعد بعدا مثل این عبدالله جعفر همیاری که خیلی جایی با قرد بزرگوار رمزیم و, و شنه الله به رحمته میدونیم شما ما در مسائل مثل خبر مثل اصولاً اصولا معیار ما رو حقییت نه رو واقعی یرایی اشتباه نشه. ما هر مقدار الان از مرهوم عبدالله جعفر حمیری تیگیری بکنیم این معنیش این نیست که مثلا ایشون دیگه قول اغبر آخر و قول اغبر هست ایشون کتاب علی بن جرد رو از نوه ایشون عبدالله نه حسن شده چند بار از کرده ایشون کتاب علی بن جرد رو از نبه ایشون که به قوم آله عبدالله بن حسن برن علی بن جرد نبه ایشون خب ایشون در قوم ها ده کتاب جدش فرش مضوع مهمیهگی هم این کتاب رو زبک کرد تو موجوده ق یه اختیار کتابه کل کتابه دوی و خورده ی حدیث داره کتابه به اصطلاح علی این جعفل که در قربولستان خب لیکن مثلا در همین کتاب علی این جعفل این نسخه, نسخه میبینیم مرمومت کلینی خب کلینی هم تو قومی دیگه به این معنام شاگر دیشن. یک دانر حدیث از این نسخه نمید اون تعریف جای خودش را اشتباه نفسی. ما وقتی میگیم عبدالله اونجا فکره این جهل و قدره نبییم معنا که هر کاری که ایشان کرد به قسمی کنیم مثلا اگه ایشان این قابل اعتماد میسه نصر عبدالله مرسن فقوصی نبیه اگه اینجا فکره اما وقتی من میگیم یه قومی ها تا اونجایی که من میدارم کلی که اصلا نرمدارم صد حال اگه ممکنی مورد تونجه که توزیه نمنه که صد حال نر خب این خیلی عجیبه مثل عبدالله جعفر با اون همیاری با اون جلالت شنگ از نبی علیان جعفر تقریبا کتاب حالا ما چون نمیدونیم اصل کتاب چند حدیث دوده در هر حال این موزن کتابه این کتابه قروه اصنا و دو تا قومی بزرگوار ما هم کلینی و هم مرگون صدوب این کتابه علیان جعفر از طریق امرکی نشابوری نروی کردن خب این که یا از طریق موسفن قاسم کفی دو نسخه ای که نحب کردن موسفن قاسم بدلی کفی یا انوکی ابن علی بوفکی بوفکی روستایی در نیشاهوی نیشاهوی خب تبه خواهبه این نسخه ای که در قام بود اولا بود دیگه نسخه عبدالله هستن که اولا بود راویه این نسخه نسخه همیلیه با جلالت شعن علایانه جلالت شعن به این معنی نیست که ما حادیث شخص و عبود رو پنیم بله مرد بسیار مزرگاری توی بحثم کشنده آل اجتماع ساقنه و شیخ ابو هم رحمه الله این شیخ ابو هم مراد عثمان ابن سعید امریس نائب اول از نواب اربعه و چون ایشون متوفای 266 هم یعنی 6 سال بعد از قیبت سغرا چون قیبت سغرا 260 بود از و از قیبه 260 بود ایشون چیست سالشون پیر بودن دیرشون ایشون از زمان امام حادی وکیل بودن وکیل امام حادی امام حسکره بعدن مقیه صلاح دیگه اواخر به بود این ایشون به عنوان اشیح ابو عمر و امام اند احمد بن اسحاق، احمد بن اسحاق اشعری صاحب قربش تو چیزه نیست توی سرکل زهاب کجاست برنگشته احمد بن اسحاق از بزرگان اشائره قومه بسیار مرد بزرگوار و بسیار مرد جیو قردیست خوغل عاده این احمد ابن اصحاق فوق العاده از روده خوغل عاده های زمان خودش رضوان الله اون وقت اجتماع تو اند و ابو عمر اند, اند احمد ابن اصحاق خیلی انشید به نظر میاد یعنی نمیدونیم آلا این چطور شده این قصه چطور واقع شده چون ابو عمر که در بغداد بوده آیا یک سفر محرمانه به قوم آمده چون احمد بن استاقه بنابراه معروف که قوم ساکن بوده میرفت به برداد. برداد در یک سفر هم آخای سباق احمد بن استاقه عشق علی که این من الان نمیدونم میگم حدیث تنظرن خیلی عالی اما این اجتماع کجا بوده قا باید این اجتماع تا ساله دویست و و باشه بین دویست و تا دویست و آیا عثمان ابن سعید مح... چون ما خبری از آمدن عثمان به قوم نداریم ما در تاریخی تاریخیمون چیزی نداریم که عثمان ابن سعید به قوم آمده آیا قوم آمده خانه احمد من اطاق بودن احتمال هست رو مثلا خبردار نشدیم احتمال هست و احتمال دیگر که اینا ها بغداد بودن تصادفی غیر از این سفری که 297 شونه به, به ارائه رفته این سفر دیگه تو اوائل قیبت اینها رفته بودن به اراغ برای اینکه که وضع بقیه سالله روشن بشه چه به امام زمان سوال بودن این احتمال فعلا قوی تر به نظر میرسه این احتمال اینکه اینجوری فرض بکنیم که مثلا باید موزی ما احمد ابن جایی وارد بود الان با قول موزی کنه سفر جایی وارد بوده مرهوم عثمان رسعید دیدن ایشان و اینجوری فرض می‌کنید فضای روایت رو به خرج چون داره اشتمات و الشيخ ابا امن الله اند احمد بن اسحاق و دیگه طرز اینجوری بشه برای ما خیلی روشن نیست که این قصه کجا و چه اتفاق افتاده اقرب به ارتبار همین می‌خوره که شاید مثلا چند تا از بزرگان عقب بعد از غیبت بقیت الله به اراغ رفتن به بغداد رفتم تحریف مکنم امتا سامره و حضرک را بودن که قیبت واقع شد شاید به سامره نمیستن بردن و ابا امر که عصمان در بغداد بوده شاید بغداد رفتن و در خانه احمد ابن اصحاق اینها جمع شد ظاهرش اینطور طور باشه حالا چه سالی بوده و چی جوری بوده فعلا ما خیلی خودم رو بیم. و خیلی اطلاع اطلاق دقیقاً دلایل ظاهرش اینه فخرمازی احمد بن اسحاق احمد بن اسحاق به من اشاره کرد رمز انواع مختلفی به اشاره به چشمه اشاره با دست لمس به دست فشار دادن کوتاه با دست این ظاهرا احتمالاً دست باشه احمد بن اسحاق انا اساله عن خلاص. چون نائبه اول بود و معروف و نائبه یعنی مسلم بود نه معروف نائب حضرت مهدیس از من پرسید که شما ازشون راجع به بقیه الله سوال بکنید از که مرموم کلینی میره اول می حدیث باب قرار داده در باب تصمیت منظر از من پرسید بگو که از بقیه الله سوال بکنید که اشون نائب شنان هست فقال صداهو یا عبا ام عبدالله همیری مرموم همیری یه مقدمی چینی اول میکن راجع به جلالت شعن اولم یه ابا هم اینی اولید انه اصاله که انشه خب یه مطلقی پس هم واعنه به شاکه من شک ندارم گره این دارم لیکن میخوان سوال بکنم وقتی اینجور میگه پیما اولید انه اصاله که هم؟ فعن اعتقادی و دینی وقتی شرحی میده این چوره باید دیگه هم هست که در اعتقاد من این که زمین بدون خود جهت نمیشه چل... الا چه روز قبل از قیام و قیامت اجب معاش میشه لا تقر من حجتی من حجته الا اذا قبل يوم القيامه به 40 يومه به اضافه این رواشن دو از اینجا هم روات داریم که به هر حجال باشه حالا که کیش روز تا قیامت نمونده حجتی در زمان حال بیاد همون حالت چه روزه فعلا وجود داره بله الا الا قبل قبل يومه دنیا رو مراد اینها قبل از يوم القيامه به 40 يومه اضافه زاله و اغلقه باب التوبه این هم روایت دیگه داریم که دیگه توبه قبول نمیشه حالا ما نمکنم اون روایت رو بخونیم توضیحش اجید دیگه بودش با به اقل رواب و توبه فلم یک و ینفع و نفسن ایمانها ایمانها, ایمانها رو فائل ینفع بخونیم آیه مبارکت نیست لم چکن آمنت من قبلو او کس بسی ایمانها خیزا فعلا ای که شرار شرار خلق و خبر الله که اینا دیو حجب نلمه و همون لذین س این خب یه مقدمه بود که من یقین دارم که حجت در زمان ما هست بحث نادره بلکه می حالا من خواستم سوال بپرسم مثل سوال از ابراهیم میمونه بلکه اخبرت عن عزاد یقینا میخوام خوام یقین هم زیاد بشه و ان یا ان هر دوش دارست. ابراهیم علیه السلام سعد ربه و عزوجت ان يريكه كيف يحيي الموتى و قال اولا تو من قال بل ولك لا كنت لديك یک شاهد از قران که من شک و شبهی داریم تو وقت کدش آنو بی حدیثتون تا موکم ببخشید وقت اخبرن حالا خود احمد ابن اصحاق بجا نشسته بوده وقت اخبرن ابو علی احمد ابن اصحاق ان عبد حسن علیه السلام در این توصیقات مرحوم عمري عثمان ابن سعید عبد حسن هم از ده حادی قال تو و قلتو من آآمن او احمد آخد و قول من اقبر فقال لهو على عمري سرعتون سرعتی فما أدعو إليك عني فعني و, و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وقته فانه هو که تماصر کردم امده این عموم تعلیله فانه هو سرعت گفتن از قول امام در میان که واجب وقت قول و باز هم احمد ابن اصحاق من گفت انهو سأل با محمد امام اسکری انه مثل ذالک فقال لگو امام حاضری فقط قدر رو گفتن عثمان ابن سعید امام اسکری قدر و پسر عثمان و پسرش محمد ابن عثمان فقال لگو و ابنهو سقطان که بعداً پسر ایشان دوم شد یا و و ما و ف ما ما هم فعنه ی بقولان و عتی اهما این مطلب رو فهمیدم فعلا قول امامان از مذا یافیش شناسم این ایام این دوتا امام بزرگ رو رو تو اینطور فخر را ابو امر ساجدن و بقا ابو امر سویده شو کرد و گریه کرد حالا گریه شادش شده شو بوده شاد به خاطر عیبت امام بوده امام زمان خود بشه سن مقال سلح هسته خیلی خواهدی معذمان تمام مطلب تو فقلت لهو قام از خود نو پرسن انتره ای تلخلت من بعد علی محمد سلام تو کدوم موزان دیدی آنه تمام صبات جه خود بعد عبی محمد صلی الله علیه و وسلم الله من خودم بیدم و رقبت مثل را آلا مشکلی تو با نمیده مرحوم آسان سریع آدم, آدم اشاره به دستش نی او و اومعه بیده. که گردن حضرت مثل این دست من ننوشه که دستشون چیگه فقول تو فبق یه راهده فقول تو لفت یک سازیه فقالی حاتم بگو مطلب تو قول تو فعل اص اسمشون چیه قال محرمان علیکم این دیگه نمیشه یاد بود ان تسألو ان لازم ولا اقولها غام اندی اینم ملمن نیست فد ایسی لی ان احل ولا احرم من که نیستم بیگم اللہ علیکم حلال. ولکن انها علیه السلام امام فرمده اسم بر ولکن انها علیه السلام به ان نام و در سلطان مرادش از سلطان در عبارت اون زمان سلطان کسی بود به اصطلاح ما به اصلاح امروز ما تو ایران بهونظ اییکمون نسبت فر از به مام رهبری مثلا اون خلیفه رو رهبر میگفتن سلطان اون کسی که اجرای یا بود طلاح و که ظاهن اینجا چون در سامه را بوده مراد از سلطان خود خلیفه باشه خلیف اون زمان بهث خلیف عببای معوطن عببااسی ام عت سلطان اما نبا محمد عليه انسلام مرا و لم یا خلق بند. ال آن دستگاه خلافت به این باوره که حضرت دستخری فرزند ندارند و قسم میراو و میراث حدرس رو هم تق می کردن و اخ او منله حققل قوفی اشاره به جهعفر کذاب که سا که هرانشش گرفتن و او بزار ایال او یک دوون الان ایال در اینجا چون حضرت زن نداشتن مرادشون همون کلیزکان و محلطان رو به حضرت لیس احدان یک این ایالوهو یعنی ایال من لاحق له چون اون جعفر کذار من در رجال دارم سی تا زن داشته حالا شد کمیز و اینها بوده ساده بیست تا بچه خیلی نسل فرابانی داره و حوضا دا ایالوهوی جلون لیس احدیت سرانیت یتعرف علیهن کسی اونا نمیشه چیزی بگه ولا امیونی لهم شیئا و اذا وقع الاسم اگر ما اسم بریم یه دفعه دستگاه به دنبالش میوفته وقع الطلب شو میگافتیدی فتح الله و امش کن زاله اسم رو نداریم کی صحرا حدیث صحیح صحیح اون که شنیده اسو واقعاً خیلی معنی شو مضمون میشو معنی با کلمه قال کلی و حدث نشه خود منه اصحاب نازحه به آن ناباعر ساله احمدین اسحار هند مثل هزار تأیید به مثل این نسخه ای که دوستان و سخم نه مثل شهر معلوم مجلسی و شهر معلوم مازندرانیم چیزی تو عبارت که خیلی اینت زیرش هیچ مغلقه این بازار اینطور این باشه نه حالی نسخه کافی چاپ جدی کردن با نسخه مختلفه تمامیم عصرش اینطوره آن ناباعر ساله و احمدون اسحار هند مثل هزار نه س احمد بن اسحاق کسی گفت که احمد بن اسحاق هم پرسیده هم همین جواب داده به نظر این نگاه که اگر تو این کامپیوتر را باشین چاپ جیل کافی به نظرم غلط تو اونجا که من نه مربون مزسی توضیحی که روجی بین اوعبدن نه هم مازم داه اون درشر دو که من دیدم در یه ش هم بهگاه نکنیم به نظرم میادنسسی غلط باشه تنها نه اوواار س و احمدنااسهال مثلاح ها چون اونی که این رو گفته احمد بن اسحاق نیست که اینی داره سه علم احمد بن اسحاق به نظر هم قلب بلا ها مگه سوئل اند باشه این هم احتمال داره این احتمال که سوئل اند احمد اما اینی که الان کاف شده نمیخوره سه احمد بن اسحاق نمیخوره این برای جوده نمیداره و تأکید نه مجلسی در اینجا توضیح داده که این جور در نمیاد عباره نیست نه معقول آقای مازندران ایش بود و صالح مازندران این دو تا شهرهی که من دیدم به نظر من یه خرابی اینجا توی متن کتاب کافی داره حالا اندم شد باز بد نیست سوئله احمد ابن اصحاق اینم بد نیست سعال ابو احمد ابن اصحاقم بد نیست این نسخهی موجود به درد نمی کوره و